مصنوی معنوی مولوی برنامه بیست و پرسیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرزاید را که امروز چونی و چون برخواستی و جواب گفتن او که اصبحتو مؤمنن یا رسول الله گفت پیغمبر سباه زید را کیف اسبه در رفیقه با صفا گفت ابدا مؤمنا بازوش گفت کو نشان از باغ ایمان گر گفت گفت تشنه بودم من روزها شب نخوافتستم از عشق و سوزها تا روز و شب گذر کردم چنان که ز اسبر بگذرد نوک سنان که از آن سو جمله ملت یکی است صد هزاران سال و یک ساعت یکی است هست ازل را و ابد را اتحاد عقل را رهنی نیست آن سو گفت از این ره کو رهاورد بیار در خور فهم و عقول این دیار گفت خلقان چون ببینند آسمان من ببینم عرش را با عرشیان هشت جنت هفت دوزخ پیش من هست پیدا همچه بود پیش شمن یک به یک وا می شناسم خلق را همچو گندم من جو در آسیا که بهشتی کیست و کی است، پیش من پیدا چمار و ماهی است این زمان پیدا شده بر این گروه یوم تبیز و تسوت و وجوه پیش از این هر هرچند جان پر پرعیب بود در رحم بود و ز خلقان غیب بود اشقی و من شقی فی لوم من سمات الجسم یعرف حالهم تن چو مادر طفل جان را حامله مرگ درد زادن است و زلزله جمله جانهای گذشته منتظر تا چگونه زایدان جان بتر زنگیان گویند خود از ماست او رومیان گویند بس زیباست او چون بزاید در جهان جان وجود پس نماند اختلاف بیز و سود گر بود زنگی برندش زنگیان روم را رومی برد هم از میان تا نزاد و، مشکلات عالم است. آن که نازاده شناست او کم است. او مگر ینظر به نور و بود. گندرون پوست او را ره بود. اصل آب نطفه اسپید است و خش لیک عکس جان رومی و حبش. میدهد رنگ احسن و تقویم را تا به اسفل می برد این نیم را. این سخن پایان ندارد. بازران تا نمانیم از قطار کاروان. یوم تبیز و تسود و وجوه ترک و هندو شهره گردد زانگرو. در رحم پیدا نباشد هند و ترک چون که زاید بیندش زار و سطور، جمله را چون روز رستاخیز من فاش می بینم ایان از مرد و زن. هین بگویم یا فرو بندم نفس لبگزیدش مصطفی یعنی که بس. یا رسول الله بگویم سر حشر در جهان پیدا کنم امروز نشر. هل مرا تا پرده ها را بردارم تا چ خورشید بتابد گوهرم تا کصوف آید زمن خورشید را تا نمایم نخل را و بید را و نمایم راز رستاخیز را نقد را و نقد قلبامیز را دستها ببریده اصحاب شمال وانمایم نمایم رنگ کفر و رنگ آل وا گشایم هفت سوراخ نفاق در زیای ماه بی خصف و مهاق وا نمایم من پلاس اشقیا بشنوانم تبل و کوس انبیا دوزخ و جنات و برزخ در میان پیش چشم کافران آرم عیان وا نمایم حوض کوثر را به جوش کا بر روشان زند بانگش به گوش وان کسان که تشنه برگردش دوان گشتند این دم نمایم من ایان می بساید دوششان بر دوش من نهرهاشان می رسد در گوش من اهل جنت پیش چشمم زختیار در کشیده یک دگر را در کنار دست هم دیگر زیارت می کنند از لبان هم بوسه غارت می کنند کر شدین گوشم گوشم زبانگ آه آه از خسان و نعره و حسرتاه این اشارت هاست گویم از نقول لیک می ترسم ز آزار رسول همچنین می گفت سرمست و خراب داد پیغمبر گریبانش به تاب گفت هین درکش که اسبت گرم شد عکس حق لایستهی زد شرم شد آینه تو جست بیرون از غلاف آینه و میزان کجا گوید خلاف آینه و میزان کجا بندت نفس بهر آزار و حیای هیچ کس آینه و میزان محک های سنی گرد و سالش تو خدمت ها کنی کس برای من بپوشان راستی برفزون بن ما و من ما کاستی اوت گوید ریش و سبلت برمخن آینه و میزان و آنگه ری و پند چون خدا ما را برای آن فراخت که به ما بتوان حقیقت را شناخت این نباشد ما چه عرضی می جوان که شوی ما این روی نیکوان لیک درکش در نمد آینه را گر تجلی کرد سینا سینه را گفت آخر هیچ گنجد در بغل آفتاب حق و خورشید ازل هم دغل را هم بغل را بردارد نی جنون ماند به پیشش نی خرد گفت یک اسب چو بر چشمی نهی بیند از خورشید عالم را تو هی یک سر انگشت پرده ماه شد وین نشان ساتری الله شد تا بپوشاند جهان را نقطه ای مرگردت منکسف از سقته لب ببند و غور دریای نگر بر را حق کرد محکوم بشر همچو چشمه سلسبیل و زنجبیل هست در حکم بهشتی جلیل چارجوی جنت در حکم ماست این نظور ما ز فرمان خداست هر کجا خواهیم داریمش روان همچو سهرن در مراد ساهران همچو این دو چشمه چشم روان هست در حکم دل و فرمان جان گر بخواهد رفت سوی زهر و مار ور بخواهد رفت سوی اعتبار گر بخواهد سوی محسوسات رفت ور بخواهد سوی ملبوسات رفت گر بخواهد سوی کلیات راند ور بخواهد حبس جزویات ماند همچنین هر پنج حس چون نایزه بر مراد و امر دل شد جایزه هر طرف که دل اشارت کردشان می رود هر پنج حس دامن کشان. دست و پا در امر دل اندر ملا. همچون در دست موسا آن عصا دل بخواهد پا در زو برقص. یا گریزد سوی افزونی ز نقص. دل بخواهد دست آید در حساب. با اصابه. تا نویسد او کتاب دست در دست نهانی مانده است او درون تن را برون بنشانده است گر بخواهد بر ادو ماری شود ور بخواهد بر ولی یاری شود ور بخواهد کفچه در خوردنی ور بخواهد همچو گرز دهمنی دل چه میگوید بدیشان ای عجب ترف وصلت ترف پنهانی سبب دل مگر مهر سلیمان یافته است که مهار پنج حس برتافت است پنج حس از برون میسور او پنج حس از درون معمور او ده حس است و هفت اندام و دگر آنچه اندر گفت ناید می شمر چون سلیمان دلا در مهتری برپری و دیو زن انگشتری گر در این ملکت بری باشی زریو خاتم از دست تو نستاند سدیو دیو بعد از آن آلم بگیرد اسم تو دو جهان محکوم تو چون جسم تو ورز دستت دیو خاتم را ببرد پادشاهی فوت شد بختت بمرد بعد از آن یا حسرتا شد یا عباد بر شما محتوم تا یوم تناد مکر خود را گر تو انکار آوری از ترازو باینه کی جان بری؟ متهم کردن غلامان و خاجتاشان مر لقمان را که آن میوه های که می آوردیم، او خورده است. بود لقمان پیش خاجه خیشتن. در میان بندگانش خارتن میفرستاد او غلامان را به باغ تا که میوه آیدش بهر فراغ بود لقمان در غلامان چون تفیل پرمعانی تیرهصورت همچو لیل آن غلامان میوه های جمع را خوش بخوردند از نهی تام را خاجه را گفتند لقمان خورد آن خاجه بر لقمان ترش گشت و گران چون تفحص کرد لقمان از سبب در اتاب خاجه اش لب گفت لقمان سیده پیش خدا بنده خائن نباشد مرتضا. امتحان کن جملمان را ای کریم، سیر من درد تو از آب همیم. بعد از آن ما را به صحرای کلان تو سواره ما پیاده می دوان. آنگهان بنگر تو بد کردار را، سنه های کاشف الاسرار را. گشت ساقی خاجه از آب همیم مرغلامان را و خوردند آن زبیم بعد از آن میراندشان در دشتها میدویدندی میان کشتها قیدر افتادند ایشان از انا آب می آورد زیشان میوها چون که لقمان را درآمد قیز ناف می برامد از درونش آب صاف حکمت لقمان چودانت این نمود پس چه باشد حکمت رب الوجود یوم تبلا السرایر کلها بن منکم کعمنو لا یشتها چون سقو ان همیما قطعت جملت الاستار مما افزعت نار از آن آمد عذاب کافران که حجر را نار باشد امتحان آن دل چون سنگ را ما چند چند نرم گفتیم و نمی پذرفت پند ریش بد را داروی بد یافت رگ مرسر خر را سزد دندان سگ الخبیسات الخبیسین حکمت است زشت را هم زشت جفت و بابت است پس تو هر جفتی که میخواهی برو براو هم همشکل و صفات او بشو نور خواهی مستعد نور شو، دور خواهی خیش بین و دور شاو و ره خواهی از این سجن خرب، سرمکش از دوست، وسجد وقترب. بقیه قصه زید در جواب رسول صلی الله علیه و سلم. این سخن پایان ندارد خیز زید بر براق ناطقه بربند قید ناطقه چون فازه آمد عیب را می دراند پرده های غیب را غیب مطلوب حق آمد چند گاه این دو هلزن را بران بربند راه تکمران درکش انان مستور به هر کس از پندار خود مصرور به حق همه خواهد که نومیدان او زین عبادت هم نگردانند رو هم بر امید مشرف می شوند چند روز در رکابش می دوند. خواهد آن رحمت بتابد بر همه بر بد و نیک از عموم مرهمه حق همه خواهد که هر میر و اسیر با رجا و خوف باشند و حذیر این رجا و خوف در پرده بود تا پس این پرده پرورده شود چون دریدی پرده کو خوف و رجا غیب را شد کر و فر برملا برلب جو برد زن یک فتا که سلیمان است ماهیگیر ما گروی است این از چه فرد است و خفیست. ورنه سیمای سلیمانیش چیست اندر این اندیشه می بود او دو دل تا سلیمان گشت شاه و مستقل دیو رفت از ملک و تخت او گریخت تیغ بختش خون آن شیطان بریخت کرد در انگشت خود انگشتری جمع آمد لشکر دیو و پری آمدند از بهر نزاره رجال در میانشان آنکه بد صاحب خیال چون در انگشتش بدید انگشتری رفت اندیشه و گمانش یکسری هم آنگاه هست گان پوشیده است این تحری از پای نادیده است شد خیال غایبن در سینه زفت چون که حاضر شد خیال او برفت گر سمای نور بی باریده نیست هم زمین تار بی بالیده نیست یؤمنون بالغعب می باید مرا زان ببستم روزن فانی سرا چون شکافم آسمان را در ظهور چون بگویم هر طرافی ها فطور تا در این ظلمت تحری گسترند هر کسی رو جانب می آورند مدت معکوس باشد کارها شهنه را دزد آورد بر دارها تا که بس سلطان و عالی همتی بنده بنده خدایت مدتی بندگی در غیب آمد خوب و کش حفظ غیب آمد در استعباد خوش کو که مدح شاه گوید پیش او تا که در غیبت بود او شرم رو قلع داری که از کنار مملکت دور از سلطان و سایه سلطنت پاس دارد قلعه را از دشمنان قلعه نفروشد به مال بیکران غایب از شه در کنار صقرها همچه حاضر او نگه دارد وفا پیش شه او به بود از دیگران که به خدمت حاضرند و جان فشان پس به غیبت نیم ذره حفظ کار به که در حاضری زان صد هزار طاعت و ایمان کنون محمود شد بعد مرگ در عیان مردود شد چونکه غیب و غایب و روپش به پس لبان بربند و لب خاموش به ای برادر دست بادار از سخن خود خدا پیدا کند علم لدن بس بود خورشید را رویش گوا ای شیئن اعظم و شاهد اله نه بگویم چون قرین شد در بیان هم خدا و هم ملک هم عالمان یشهد الله و الملک العلوم انه لا رب الا من یدوم چون گواهی داد حق که بود ملک تا شود آن در گواهی مشترک زان که حضور آفتاب بر نتابد چشم و دلهای خراب چون خفاش کوتف خورشید را بر نتابد بکسلت امید را پس ملاک را شما هم یاردان جلوگر خورشید را بر آسمان کنزیا ما زافتابی یافتیم چون خلیفه بر ضعیفان تافتیم چون مه نو یا سروزه یا که بدر مرتبه هر یک ملک در نور و قدر زجنه نور سلاسه با بر مراتب هر ملک را آن شعا همچو پرهای عقول انسیان که بس فرقستشان اندر میان پس قرین هر بشر در نیک و بد آن ملک باشد که مانندش بود چشم اعمش چون که خر را بر اختر و را شام شد تا ره بیافت، گفتن پیغامبر علیه السلام مرزید را که این سر را فاشتر از این مگو و متابعت نگهدار گفت پیغمبر که اصحاب نجوم رهروان روان را شم و شیطان را رجوم هر کسی را گر بودی آن چشم و زور کو گرفتی زافتاب چرخ نور کی ستاره حاجت استی ای زلیل که بودی بر نور خورشید او دلیل ماه میگوید گوید خاک و ابر و فی من بشر بودم ولی یوها الای چون شما تاریک بودم در نهاد، وحی خورشیدم چون این نور بداد. ظلمت دارم و نسبت با شموس نور دارم بهر ظلمات نفوس. زن ضعیفم تا تو تاب آوری، که نمرد آفتاب انوری همچو شهد و سرکه در هم بافتم تا سوی رنج جگر ره یافتم چونزه علت وارهیدی ای رهین سرکه را بگذار و میخور انگبین سخت دل معمور شد پاک از هوا بین که علی رحمان عرش استوا حکم بر دل بعد از این بی حق کند چون یافت دل این رابطه این سخن پایان ندارد زید کو تا دهم پندش که رسوایی مجو برنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردن